به پاسخ چنین داد دادشاه که از راستی بگذری نیست را از این بیش کردی که گفتی تو کار که یار تو بادا جهان کردگار نبینم همی دشمنی در جهان نه در آشکارا نه اندر نهان که نام تو یابد نپیچان شود چه پیچان همانا که بیجان شود به گیتی بگیتی نداری کسی را همال همال یعنی همتراز و همسر به گیتی نداری کسی را همال مگر بیخرد نام بر پور زال که او راستا هست زابل ستان همون بست و غزنین و کابل به مردی همی زاسمان بگذرد همی خیشتن کهتری نشمارد میگه خودشون تر از ما نمیدونه که بر پیش کابوس کیپ بنده بود زکی خسرو در جهان زنده بود به شاهیز گشتاس نارد سخن که او تاج نو دارد و ما کهن این گفته رستمه میگه از گشتاس حرفی نمیاره میگه گشتاس تاج نو داره ولی تاج من که شاهز آبولستان هستم تاج کهنه و سابقش بیشتره بنابراین به سراغ ما نمیاد به شاهیز گشتاس نارد سخن که او تاج نو دارد و ما کهن بگیتی مرا نیست کس هم نبرد زر رومی و توری و آزاد مرد این از قول رستم میگه گشتاس که رستم میگه بگیتی مرا نیست کس هم نبرد حالا دستور پادشا سوی سیستان رفت باید کنون به کار زور و بند و فسون برهنه کنی تیغ و گوپال را گوپال یعنی گرز برهنه کنی تیغ و گوپال را به بند آوری رستم زال را زواره برادر رستم فرامرز پسر رستم زواره فرامرز را همچنین نمانی که کس پرنشیند به زین به دادار گیتی حالا از این قسم بسیار خورده تاله ها به دادار گیتی که او داد زور فروزنده اختر و ماه و هور چون این سخنها به جایاوری زمن نشتویزین سپس داوری داوری یه معنیشم معنی جنگ و ستیز و دعوا و مرافه است باز این رو هم معنی متداول نیست داوری به معنی حکمیت و حکم کردن به صورت غذاست اما به معنی عرض کردن جنگ و دعوا هم هست و حافظ در یه بیتی میفرماید که یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری جنگ و داوری رو به صورت متعدادف میره این است که میگوید بدادار گیتی که او دادزور پروزنده اختر و ماهوهول که چون این سخنها به جای آوریز من نشنویز این سپس داوری سپارم به تو تاج و تخت و کلاه نشانم بر تخت بر پیشگاه این بعده آخرین حالا اسفندیار اینجا روحیه و گرفتاری بسیار عجیبی داره از یک طرف دل خودش و نظر خودش این است که دارن با بد میکنه این مرد جز خدمت و جز زحمت و جز جانفشانی برای ایران و مردم ایران و شاهان ایران نکرده از تمام اونا منشور و عهد داره حالا چجوری باید رفت داشت آورد؟ عین این طرفا رو به گشتاست هم میزنه و بنده از کلام حکیم توس بعد نقل خواهم کرد اما چون خودشم خیلی دلش تخت و تاج رو میخواد میاد خودش به این ترتیب گول میزنه یعنی خودشو راضی میکنه که خب من که بنده فرمان پادشاه هم و فرمان شاه این است من باید دنبال این فرمان برم اگر نرم گناهکار میشم در دنیای بعد جای من در دوزخ هست چون فرمان شاه رو به جا و به این ترتیب خود رو قانع حالا ببینیم که این سرگشتگی ها و گرفتاری های رو فردوسی به چه ترتیب چند داده چنین پاسخ آوردش اسفندیار که ای پر هنر نامور شهریار همین دور نیز رسم کوهن براندازه باید کرانی سخن تو با شاه چین جنگ جوی و نبرد از آن نامداران برانگیز گرد چه جویی نبرده یکی مرد پیر که کاووس خواندی و شیر گیر زگاه منوچه تا کیق و باد دل شهریاران به بود شاد نکوکار ترزو به ایران کسی نبود است کاورد نیکی بسی همی خاندندش خداوند رخش جهانگیر و شیروژن و تاج بخش نه در جهان نامداری نو است بزرگ است و با عهد کیخسرو است اگر عهد شاهان نباشد درست نباید گشتاس منشور جست اینجا یه دلیل دیگه میاره میگه اگر شما بخوای عهد پادشاهان احترام رو احترام نذاری و اون درست نشماری فردای کسی هم منشور تو رو فرمان تو رو به زمین میاندازه بنابراین اگر عهد پادشاهان درست نباشه از تو هم کسی نباید فرمان و منشوری بخواد منشور به معنی فرمان پادشاهی مهر ناکرده است که برای اطلاع همه مردم صادر می شده و می آوردن جلو مردم می خوندن. حالا گشتاس هست پراب می ده. چنین داد پاسخ به اسفندیار که ای شیر دل پرهنر نام دار هران کس که از راه یزدان بگشت همان عهد او گشت چون باد دشت همانا شنیدی که کابوس شاه به فرمان ابلیس گم کرد را همین باسمان شد به پر اقاب به زاری به ساری فتاد اندراب سهاماوران دیوزادی به برد شاهی مرو را سپرد، سیاوش به آزار او کشته شد همه دوده زیر و شد کسی کوز عهد جهاندار گشت به گرده در او نشاید گذشت میگه رستم یاقیه کلاسی تکبیرش میکنه چون ارز کردم خاندان پهلوانی سیستان قبلا که زردوشتی در کار نبوده باحت که زردوشت میکنه هیچ شاهدی در بین نیست که اینا پذیرفته باشند دین زردشت رو و قبل از او در اون جاها دین بوده وجود داشته این همین بحانه رو میاره که رستم از راه یزدان گشته و آدمی که از راه یزدان بگرده دیگه عهد و پیمانی که داشته اینا خود, به خود از بین میره میشه مثل باد دشت بنابراین اون حرفا دیگه معنی نداره یعنی تمام اونچه اسناد و مداره که تو اینجا شمردی اینا در اثر گناه رستم همه اونا ارزش خودشو از دست داده بعد مطلب مهمتر میگه یعنی درست دست میذاره روی نبز اسفندیار و اونجایی که نقطه ضعفش بوده اگر تخت خواهیز من با کلاه ره سیستان گیر و برکش سپاه چونجارسی دست رستم ببند بیارش به بازو فکنده کمند زواره فرامرز و دستان سام یعنی زال نباید که سازن پیش تو دام میگه مواظب باش که زواره و فرامرزو و به خصوص دستان یعنی زال پدر رستم دامی جلو پایتون نذارن یعنی تو رو از این تصمیم منصرف نکنن و تو حتما رستم و دست بسته بردار بیار پیاده دوانش بدین بارگاه میگه انداز جلو اسبت دست بسته. پیاده از سیستان بیارش تا در بارگاه مشالله به جای اون زحماتی که رستم کشیده عجر خیلی قابلی برش در نظر گرفته. زیاده دوانش بدین بارگاه بیاور کشان تا ببیند سپاه از آن پس نپیچد سر از ما کسی اگر کام اگر گنج یابد بسی خب اسفندیار ناراحت دیگه از این ماجرا و از این معموریت سپه بد پر از تاب کرد به شاه جهان گفت زین بازگرد تو را نیست دستان و رستم به کار همین راه جویی به اسفندیار میگه این حرفا رو بذار کنار اصلا مسئله رستم و اینا مطرح نیست دستانم مسئلهش مطرح نیست اون چه مسئلهش مطرحه شخص منم تو دنبال یه راهی میگردی که من رو از سر خودت باز کنی این قصههای دیگه باقی همه بهانه برای اون کاره دوباره این بیتا رو میخونم چون بسیار بسیار حساسه سپهبد بر اوها پر از تاپ کرد به شاه جهان گفت زین بازگرد تو را نیست دستان و رستن به کار همی راه جویی به اسفندیار دریقا قایدت جای شاهی همی مرا از جهان دور هم میگه تو نمیتونید حیفت میاد که تخت شاهی و تخت تاج رو از دست بدی میخوای من از دنیا دور باشم از دنیا دور باشم هر دو معنی رو میده یکی اینکه فعلا منو به راه دور بفرستو یکم که اصلا سر منو زیر آب کنی راحت که دیگه مدعی نمونده باشد تو باد این تخت و تاج کیان مرا گوشه‌ای بس بود زین جهان خیلی خوب اگر اسفندیار راست میگفت حقیقتاً و میگفتش که بشینا سر تخت تاجت بشین، رستم بهونه است، منم میرم یه گوشه‌ای ول میکونم این کارو، قضیه ختم میشد در اینجا. اما این هوس در دل اسفندیار هم بسیار شدیده یعنی میخواد به هر قیمتی هست به تاج تخت برسه. است که با همه حرفا که میزنه میگه اما من بنده شما هستم، خدمتگار شما هستم، و هر چه امر فرمایید اطاعت میکنم. میگرده از این گفتش میگه که ولیکن تو را من یکی بنده به فرمان را یاد صرف کندم به دو گفت گشتاسب تندی مکن بلندی بیابی نجندی مکن نژند به معنی غمگین و اندوهگینه میگه میرسی به مقصودت خیلی تند نباش به دو گفت گشتاسب تندی مکن بلندی بیا بی نجندی مکن زلشکر گزین کن فراوان سوار جهان دیدگان از در کارزار سلیح و سپاه و درم پیش توست نژندی به جان بدندیش توست چه باید مرا بی تو گنج و سپاه همان گنج و تخت و سپاه و کلا چنین داد پاسخ یا اسفندیار که لشکر نیاید مرا خود بکار گریدون که آید زمان فراز به لشگر ندارد جهاندار باز ز پیش پدر بازگشتو به تاب چه از پادشاهی چه از خشم باب به ایبان خیشندر آمد دو جم لبی پرز باد و دلی پرز غم برگشت با اوقات تلخ و وقتی گشتاس بهش گفتش که هر چقدر لشگر اینا میخوای اختیار کن و برگزین از میون اونها کسانی که جنگی باشند و بردار به بر میگوید که من لشکر نمیخوام برای اینکه لشکر اگر زمان من آمده زمان به معنی عجله و اینکه میگه گریدون که آید زمانم فراز یعنی اگر عجل من رسیده باشه جهاندار این عجل رو با وجود لشکریان یا سپایان از من باز نخواهد داشت این است که میاد با اوقات تلخ از پیش پدرش و باز دوباره مادر که بالاخره مادر دیگه یعنی هیچ عاشقی هیچ دوستداری دوستدارتر از مادر در مورد فرزندش نیست حرف سردی که به اسفندیار اوزده به او زده به کلی یادش رفته باز می‌بینه پسرش اندوگین و ناراحت برگشت گفتگوی دیگری باز بین کتایون دختر قیصر و مادر اسفندیار با پسرش اسفندیار صورت. <fill song> دید چو بشنید شد پرز خشم به پیش پسر شد پر از آب چش چنین گفت با فرق اسفندیار که ای از کیان جهان یادگار ز بهمن شنیدم که از گلستان همی رفت خواهی به زابلستان ببندی همی رستم زال را خداوند شمشیر و را بهمن پسر اسفندیاره ظاهرا در درگاه پدر بوده و گفتگو رو شنیده و قبلا آمده مادر رو خبر کرده مادر میگه این طور شنیدم که تو میخوای این کارو بکنی حالا حرف خودش زگیتی همی پند مادر نیوش عرض کردم که با شم زنانه و حس پیشبینی که مادران نسبت به سرنوشت فرزند خودشون دارن میگه پند من گوش کن زگیتی همی پند مادر نیوش به بد تیز مشتاب و چندین مکوش سواری که باشد به نیروی پیل زخون راندن در زمین جوی نیل به در رجگرگاه دیو سپید زشمشیر شمشیر او گم کند راه شید همون ماه ها ماوران را کشت نیارست گفتن کسو او را درشت همانا چو سهراب دیگر سوار نبونده از جنگی گه کارزار به چنگ پدردر به هنگام جنگ به آوردگه کشته شد بیدرنگ به کین سیاوش ز افراسیاب ز خون کرد گیتی چو دریای آب که نفرین بر این تخت و این تاج باد بر این کشتن و شور و تاراج باد میگه نفرین به این تخت و تاج که ببین چه بازیهایی در دنیا در آورده و چه جور مردم سر این کار از بین رفتن و حالا نوبت توست مده از پی تاج سر را به باد که با تاج شاهی ز مادر نزاد پدر پیر سرگشت و ورناتوی به زور و به مردی توانا تویی سپاه یکسره بر تو دارند چشم مَی افکن تنان در بخشم جز از سیستان در جهان جای هست دلیری مکن تیز من مایه است مرا خاکسار دوگیتی مكن مکن از این مهربان مام بشنو سخون گفتار کتایون اینجا تمام که تایون چو بشنید شد پرز خشم به پسر شد پر از آب چشم چینن جا هی تاج سراب باد که با تاج شاهی زماده تا آ با برین شو با. و اسفندیار جواب میده این دفعه دیگه جواب سرد نیست اما به هر حال این حوث تاج و تخت در دل او ریشه کرده و ازش صرف نظر نمیتونه بکنه. منتها نمیگه که من این تخت و تاج و خیلی دوست دارم میگه فرمان پدر رو چه کنم؟ فرمان خداست من گناهکار میشم. چنین پاسخ آورده اسفندیار که ای مهربان این سخن یاد دار همان است رستم که دانی همین هنرهاش چون زند خانی همی نکوکار ترزو به ایران کسی نیابی وگر چند پویی بسی چو او را ببستن نباشد روا چنین بد نخوباید از پادشاه ولی که نباید شکستن دلم که چون بشکنی دل زجان بگسلم چگونه کشم سر فرمان شاه چگونه گذارم چنین دستگاه مرا به زاول سرایت زمان بدان سو کشد اخترم بیگمان چو رستم بیاید به فرمان من ز من نشنود سر هرگز سخن اینجا میگه این کار بده کار پادشاه بده رستم همون است که تو میدونی هیچ کس بهتر از اون نبوده هیچ کس نیک و کارتر از او در مورد ایران و ایرانیان نبوده و چنین آدم این رو نباید بس ولی من چه بکنم؟ من سر از فرمان شاه چه چجوری بکشم؟ دل مرا نشکنی برای اینکه اگه دل من شکسته بشه من خودم از بین میرم بعد میاد و به خودش دلداری میده یعنی یک خودش, خودش راضی میکنه میگه اگر تقدیر این باشه که مرگ من در زاول پرا برسه به هر حال ستاره به هر قیمتی هست منو به اون سو میکشه معنی این حرف اینه که من به زاولستان رفتنی هستم خلاصی به مادرش میگه و بعد دلخوشی به خودش میده که نه من اونجا میرم رستم اگه حرف منو قبول کنه به کی به کی قسم که من جز نیکی به اون نمی‌کنم میارم از شاه تقاضا می‌کنم که او رو ببخشه یک کلمه حرف سرد بهش نمی‌زنم چه می‌کنم چه می‌کنم ولی خب بسنن دست رستم در حقیقت مرگ پهلوانی رستم و هرگز به او راضی نمیشه اما ببینید اسفندیار چه جور خیال می‌کنه چورستم بیاید به فرمان من ز من نشنود سر هرگز سخن بوارید خون از مج مادرش همه پاک برکند موی از سرش بهدو گفت که ژند پیل ژیان همین خارگیری ز نیرو روان نباشی بسنده تو با پیلتن در مرو بی یکی انجمان مبر پیش پیل جیان هوش خیش میگه مرگ تو رو دوشت نذار برو پیش رستم پیش پیل جیان مبر پیش پیل جیان هوش خیش نهاده بدین گونه بر دوش خیش اگر زین نشان رای تو رفتن است همه کام بدگوهره هرمن هر است به دوزخ مبر کودکان را به پای که دانا نخواند تو را پاک رای اینجا یه حلقه دیگه از این دامی که سر راه استندیاره گشاده میشه به این ترتیب میگه حالا که تو میخوای مرگ تو به دوش خودت بگیری ورداری ببری به زابلستان اقالا این بچه ها رو نبر بچه ها رو بر ببر به دوزخ ولی فردوسی یک کلمه از این مطالبی که میگه بیمسلحت و بی ملاحظه عواقب کار نیست این بچه ها رو اسفندیار بعد میبره بازم حرف مادر رو نمیشنوه میگه بچه نمیشه که پیش زنا بمونه اینا پسر بچه باید بیاد جنگ ببینه باید آدم بشه باید سردار بشه چاره نیست باید ببرمشون میبرن و این بچه ها در زمین یه درگیری ای کشته میشن و ماده قلیزتر میشه از اینجا قدم دیگر این حادثه دردناک شروع میشه اگر این نشان را تو رفتن است همه کام بدگوهر آهر من است به دو زخم مبر کودکان را به پای که دانا نخواند تو را پاک را به مادر چنین گفت پس جنگ جویی که نابردن کودکان نیست روی. چو زن پس پرده باشد جوان بماند منش پس دو دیره روان. به هر رگه باید او را نگاه، گزارت به هر زخم و پال شاه مرا لشکری خود نیاید به کار جز از خیش و پیوند و چندی سوار ز پیش پسر مادر مهربان بیامد پر از درد و تیر ربان همه شب ز مهر پسر مادرش ز دیده همی ریخت خون در برش مادر هیچ کاری نمیتونه برای اسپندیار بکنه نه حاضر میشه که بپذیره و به زابلستان نره نه بعد که میخواد بره میگه لااقل این بچهار نبر نه میپذیره که ها رو نبره ناچار کتایون هم میره و جز گریه اوزاری کاری نمیتونه بکنه اسفندیار هم میاد همونطور که گفته بوده بهجز خیش و پیوند برادرش با اوست سه پسرش بهمن و نوشازر و مهرنوش با اوست چند تا سواری هم همراه میبره که احیانا خدمتی بکنن یا کاری هست بکنن و یه مقداری بار و گناه و خدمتگار و خلاصه مطلقا لشکری چیزی همراهش نبوده و برد صبح این مذاکره سهرگاه اسفندیار آماده میشه برای رفتن اما از اول کار همه چیز اسفندیار رو میخواد وا داره که از این سفر صرف نظر کنه ولی اسفندیار گوش به این حرفان نداره